حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه به در همه کبادارت چون بلدی بخندی و چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم <تصفيق> ازوا که دلب سبز پیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردان پیش با که قلب سبزت بیچیده توی دنیا از اوج موج شادی،, شادی تا فردان و, و پس فردان سلام همگی خوبی خوش اینجا خبرها من فرشد منافی نیستم در خدمتتونم نیستم الان خودش میاد بله من اومدم بونتا این اینا هفته پیش ما پخش کرده بودیم من نمیدونم حالا چه سر و سری داره با سامی و اینا دیگه دوباره پخش ها اینا باید. کیه سامی مسئله چیز ازدواج و ایناست باشه مشتباشه. مشتباشه. باشه ما میگیم اشتباه شد چما هم بگین اشتباه شد کی به کیه آقا کی به کیه سلام علیکم خوبین خوشین این رادیو پسورده 968 امروز دوشنبه بیست و هشتومه دقیقه مای و چهار پنج و پنج دقیقه با شماییم خب آقا این دختر خانم و پسرها خوبین شما چه خبره من دویده همی خود نفس گرفت خوبین خوشحالین ردیفین قمقصه و غذابلا دوره دیگه ایشالله جان چی شده؟ بعضی ها افسردن؟ او. اوه یادم اومد آقا نکنه این دوستانی که میگن افسردن تا چهار افسردگی ناشی از دوشنبه آبی شدن امروز میگن دوشنبه آبی به امروز دوشنبه آبی چیه؟ الان میگن ماجرا داره الان براتون میگم بزن اول اینو بگم ما داشتیم توی خبرگذاری فارسی خبری میخوندیم که حاجاغا قرارتی فرموده بودن در طول سی و سال اخیر دوازده هزار بار مردم رو خندوندم که خب یه ها یادمون اومد این خارجگی معتقدن امروز یعنی سومین دوشنبه ژانویه افسرده تری روز ساله تازه باستش حالا اسمم گذاشتنم هم گفتن گذاشتن گفتم بهش میگن دوشنبه آبی مثل ما که مثلا تو تاریخ کشورمون جمعه سیاه و یک شنبه سیاه داریم اینا هم دوشنبه آبی دارن با تریپ ابسوردگی دیگه. دلیلش چیه؟ عرض می‌کنم. یکی قرض‌هایی که به خاطر اشغالهای تعطیلات سال نو به بار آوردن، خب ابسورده‌شدن دیگه پولا رفته همه موندنم هم چه افسورده. یکی خب وضع آب و هوا و سرما و برف و یخ‌بندان و ابری و اینا این حرفا. یکی همین اینکه دوستان معمولا خب دو سه هفته که از شروع سال نو می‌گذره اینا خب میدونید سال نو به خودشون قول میدن که امسال اینطوری باشیم، خوب باشیم، این کارو کنیم، کارهای خوب خوب کنیم و اینا بعد یه دفعه بعد این دو سه هفته متوجه میشن قولایی که موقع سال تحویل به خودشون دادن که مثلا آدم خوبی باشن یا کلا آدم بشن در سال جدید همه رو همین الان همین هفته سوم برباد رفته میبینن و در نهایت در این سومین دوشنبه از ماه ژانویه تریپ افسورده برمی‌دارن، خارج از یا خارجگیو بعد مقایسه کردیم دوشنبه آبی اینا رو با جمعه سیاه و یک شنبه سیاه خودمون و به این نتی رسیدیم که اگه اینا به خاطر قرض و قله و نمیدونم قله اجرا نشده و اینا ابسورد میشن ما به خاطر یک شنبه سیاه یا همون یک شنبه دعوای عثمان محمود علی آقا لاریجانی تو مجلس و بعد جمعه سیاه یعنی جمعه کشتار 17 شهریور 57 بعد بریم خودمون رو ناکار کنیم رسما تازه اینا هم جمعه سیاه دارن ما هم سیاه داریم اینا جمعه سیاه دارن منتها با ما فرق میکنه مدل سیاهیش یعنی این خارجکیا تو جامعه سیاهشون خوب خب تخفیف های خفن میخوره بعد از بس مردم حمله ور میشن به فروشگاه ها دیگه سیاه میشه همه جا خودشون هم سیاه و کبود میشن آقا ولش چی چه مقایسه سییه؟ سه من نمیفهمم اما چرا داریم خودمون رو با این ها مقایسه میکنی؟ ما همون میریم برای دوازده هزار و یکمین بار به بیانات آجاقا قرائتی میخندیم شاید تونستیم این غم دوشنبه به آبی روی جوری فراموش کنیم از افسرده در بیایی. ای بابا چه کاری اصلا این آمیزی کردن روزا من نمیدونم چه کاریه ولش کن آقا بریم به زندگی خودمون برسیم دیگه الان همه خوشحالن دیگه افزار دیگه دیگه ندارین دیگه حل نه چرا آقا جان خب دوره پسابرجام ها آن ناسلامتی. جون دارین قصه نمیدونم رد صلاحیت چودا رو میخورین من نمیدونم چرا عادت دارم بعضی نیمه خالی لیوانو ببینن همش از ما میشنفین فقط فوکوس کنین روی لغو تحریم ها حالشو ببرین بله شل کنین آقا اخمارو واکنی اخمارو واکنین ولش کن. دیگه چه خبر ما بد نیستیم مشغولیم دیگه امروز امروز میخوایم در مورد زیبایی‌های مردانه با هم صحبت کنیم. بله ما آقایونم هم آقا های خاص خودمون داریم دیگه الکی نیست که. امروز گوشه ای از این قشنگی ها رو بهتون نشون بدیم. فقط یه گوشه‌اشو این‌قدیشه. پس لازم یک سلام مخصوص همین اول برنامه ارز کنیم خدمت همه دوستان و عزیزانی که برای زیباتر کردن ما آقایون فعالیت میکنند، از متخصصین کاشت مو که شخصاً خیلی ارادت دارم خدمتشون خوبین شما. به خدا ایشالا خدمت برسید تا موربیان بدنسازی و سایر رشته‌های های که بشکه تحویل میگیرن سیکس پک تحویل جامعه میدن دستون درد نکنه واقعا خدا قوت خوشگلی ببساط ای اس از ببین من با خوشگلی تو باشم اما صورت من هم همیشه جوش هاش دارم تا رام مصطفی گفتم شاید از دست این جوش خلاص شدن خدا فرست نه نفهمیدین چی گفت گفت دوست داره به خوشگلی من باشه مرسی شهرمندم نکن دیگه بعدا تماس بگیر دوباره من چند تا دو دوسیه بهت بکنم زودتر موعد بریزه تا بتونی یه خورد شبیه من بشی خوشگل بشه. بوس بوس خیلی هم یه. دوستان عزیزان خانم ها آقایون خدا رو شک ما ای از هر نظر در کشور توی مزیقه باشیم کمبود داشته باشیم از نظر روش های کلاه میدونید به خود کفایی و تولید انبوه رسیدیم اصلا سادرم می کنیم گوش کنین صحبت های آقای فروشنده و پروشنده نمای جورایی و این مشتری خانم رو که به چه شکل با استفاده از یک دستگاه کارت خان خیلی شیک و مجلسی تبدیل به آقای دوزد و خانم مالباخته شدن. مشتری میاد کارتشو میکشید تو دستگاه ما. این دستگاه ما اگه انصراف و خروج نزنی کارت رو نگه میداره آخ آخ آخ توی خود دستگاه. بعد از اینکه مشتری میرفت. ما میتونستیم مثلا دوباره هر مبلغی رو بزنیم رمزش هم که سری اول گرفته بودیم ازش کارت تو کشید بعد گفت رمز تو رمزمو رو گفتم گفتی بعد دوباره گفت نف... مطلش کرد گفت ن... نفهمیدم دوباره بگو رمز تو دوباره گفتم نگو بعد... اون قبضی نگو. که میدن داد بهم به کار تمام بهم داد فرداش دیدم که یه اسمس برای اومده 20 میلیون از کارتم کم شد 20 میلیون یعنی آدم میره خریدم دیگه جرئت نمیکنه کارت بکشه نکنه دستگاه کارتخوان دستکاری شده باشه اینه که آقا یه زمانی گفته میشد حمله پول نقد خطرناکه و بهترین کار اینه که با کارت های اعتباری خرید کنی الان دیگه با ظهور چنین کلاهبرداری خطر زورگیری از خطر کلاهبرداری با کارت خان به مراتب کمتره آقای آقا کل سرمایه تو شما بریزی تو گونی و کل کنی با خودت ببری این ور بری تو مغازه کارت بکشی حالا ما که چیزی نمیتونیم بگیم جز همون جمله همیشگی که قبلا هم گفتیم دیگه نکنید نکنیم نکنند یا بهتره بگم ببین قبلا چند بار توی این برنامه گفتیم آقایون خانومها دختر خانومها آقا پسرها آقا این رمز کارتتون رو همین جوری ندهید ندهیم ندهند والا به خدا این کار آخر, آخر آقابت نداره دیدید که چی شد ببینی؟ حالا هی دوره همجی رمز کارت بلند فریاد ف... بزن بسه همه ای چشمان تا هم ای شید منافی عاشق آن زلف پریشان تو هم ای هر چیز منافی آورین اون لحظه رؤیدنم بعد از کاش آن لحظه هزاران با تقدس هرشید منافی جواد از درد نشد آورین آقا من چطور انقدر خاطرخوا پیدا کردم امروز در بین آقایون چون میدونی امروز راجب زیبایی آقای آقایون قهر صحبت کردین انقدر خاطرخوا کردم خبریه من نمیدونم برحال خیلی ممنون ولی خب در اون مورد که فرمودین لحظه ایست رویدن مو والا لحظه ای نیست یعنی پنجا جلسات هم باید بره و بیاد کلی پول خرج کنی تازه اگ ب... اگه بشه اگه نشه اگه لحظه ای بود که خب می رفتیم یه لحظه سر هم می آوردیم الان با زولف گیست شده اینجا نشسته بودم در قدمت شما ولی خب دیگه لحظه ای نیست بله این هم برحال یه جور زیبایی ظاهرا دوستان این سیاست های افزایش جمعیتی که خب به طور مکرر از سوی معظم له به ملت ابلاغ میشه یه جایی روی بعضی رفتارهای تولید مثلی خب تأثیر گذاشته. دی خبری منتشر شد که یک قلاده مار بوآ توی اسفهان بیس قلو زایده. 20 قلو 20 تا یعنی البته من خلن... کلا کلا من خیلی جانورشناس اینا نیستم این جانورشناسی مو خوب نیست نمیدونم حالا واحد شماره چی مار بو قلاده است حلقه است رشته است نخ نمره چی گلا نمیدونم اینم نمیدونیم که مار بوآ معمولاً تخ میذاره، بچه‌میزا، چیکار میکنه. فقط اینو میدونیم آقا این 20 قلو زاییدن مار بوآ توی باغبانی اصفهان اولا اتفاق نادریه که توی خبرها منقش شده. دو من قطعا در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری بوده. البته بگم به برداشته شده به بر برداشته شدن تحریم ها میتونه ارتباط داشته باشه. با احتمال مار با در این برهه تاریخی با یه زده. یعنی هم روی رهبری رو زمین نانداخته هم پیش خودش فکر کرده حالا که دیگه تحریم‌ها رو برداشتن دیگه مسئولین باغ باقاوش جای خر مرده مثلا میرن شتور مرغ آفریقایی با سس تارتار بر خودشو بچاش میاره اینه که دیگه فرصت و غنیمت چه مورد 20 قلو زایده رفته دیگه ماره دیگه بنده خدا خبر نداره آقا 100 میلیارد دلار هم اونور آزاد بشه یه موش مرده از اون تو شیکمی که از قرن نیست بره بله آقا ماره خانوم ماره این اما دوستان عزیزان خانمها آقایون اون بارندگی هایی که اول هفته وعدش داده بودیم از امشب شب قراره در نیمه غربی کشور شروع بشه فردا ادامه پیدا کنه اما این بارندگی ها محدود به همون نیمه غربی و بیشتر شمال غربی کشوره سمت شمال ایران یعنی سواحل خزر فردا و پس فردا هوا حدود 10 درجه گرمتر میشه که این گرم شدن همراه با وزیش باد و طوفانه دقت کنین جنوبیا خو این مواقع قبلا هم گفتم دریا موج کاکا دریا موجه اینو اینو میخوان شمالیا من نمیدونم حالا چیزی توی مایه ها دارن یا ندارن فقط خواستم در جریان باشین این دو روز ببینید دریا طوفانی یه وقت به تما من نمیدونم چهار تا و نمیدونم مای سفید و کفال و خصوصا کولی گیری اونا میبینم مای کولی میخوام بگیرن نرینا نرین تو دریا خدای نکرده اتفاق بیفته براتون چون آقا جان جاالن دریا طوفان در آقا دریا توفان دره دریا توفان پیدا یا زیدی موجبا دست زن پسنی بیدار کس ہینا سنن آباد آباد و اما بریم سراغ موضوع این هفته، موضوع امروزمون این هفته که موضوع زیبایی ایرانیه و امروز می‌خوایم راجب زیبایی آقایان صحبت کنیم همونطور که گفتم رازهای یک شکم سیکس پک نگاهی به پدیده زیبایی در دنیای مردانه. پایونیجی شماره 968 بدانید و آگاه باشید که داشتن یک شکم سیکس پک نیاز به ارادهی پولادین، تمرینات ورزشی سخت، رژیم غذایی دشوار و صرف مدت زیادی زمان دارد. لکن همین شکم‌های معمولی خیلی هم خوب است و هنر این است که با همین شکم بتوانید توجه و علاقه کسی را به خود جلب کرده و جذاب جلوه کنید. اما چه فایده که شما باز هم برای شکم 6 تکه زندگی را به خودتان 6 تکه کنندگیید. امزاو جمعی از با شکماشون خیلی هم حال کرده ها و با همین شکم کلی هم دلبری کرده ها و جذابیت اصلا تو زاتشون بوده های رادیو پس فرد بکنیم از جراحان محترم زیبایی مملکتمون بله. وقتی که یکی از این عزیزان دختر جوانی رو در یک جمعی میبینه بینه و با پای خودشم وارد مطبعیشون نشده بله. بر گردم به این دختر که نیمروخ میسته ببینم چی دماغی داری فکشون نگاه کن اوضاد او او او خرابه همین عجب. فردا یا پیشم بدون نوبت بد وقت بدم کار رو درست کنم بنده خدا باید بازاریابی هم بکنن دیگه اینا دیگه برمه مهمونی و پارتی و اینا برای شماها مثل استراحت و اشقال و, و اینا میشه برای جراهای پلاستیک شیفت دوم کاریشونه همیشه هم دیدیم تا کار تو جیبشون دارن تو استخرم ماشون برخورد میکنی دست در... میکنم تو مایاشون یه دونه کار در میرون میدم به... بهت میگم مثلا فردا بیاد بدون نوبت ردیفت کنم اینقدر یعنی میخوام میگم غشر پرتلاشی هستن ماشالله ماشالله اما حالا جا دیگه بحث زیباییه و و الان خب چند تلفن هم داشتیم راجع به همین بحث زیبایی بنده خب به همین بحث زیبایی و اینا مهمه میدونی؟ این هم یه بخشی از زیباییه دیگه به حال اینم یک فشنه مد جدیده اینطوری البته بگم خب قدیما هنوز کله تماما کچل مود نشده بود. کلاگیس خب پدیده تری بود. من تو از اون جایی که خب صنعت ساخت کلاگیس هنوز خیلی پیشرفت نکرده بود، هر بند خدایی که کلاگیس میذاشت شما از یه کیلومتری میتونید بفهمی که رفیقمون کلاگیس گذاشته، بدفرم هم گذاشته. اما خب زمان گذشت و گذشت و گذشت، عزیزان کچل یا مشرف به کچلیت به این رسیدن که برای رفع کچلیت میشه مثلا صورت مسئله رو کلن پاک کرد یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میبینی کف کلت به طرز عجیب و فجیعی دوچار فقرمو شده این چالش رو سریع به فرصت تبدیل میکنی و اون وقتی که دیگه یک عدد تیغ تیز یک عدد ماشین ریش خوش دست تیم میکنی میفتی به جون کل موای سر مبارک اینجوریه که دیگه یه جور برحال کچل با کلاس به حساب میایی گروه شما لطف داریم به خدا حتی در محافلی که تازه باشون مثلا آشنا میشی میتونی بگی من یه عالم مو دارم تو خودم تصمیم گرفتم کلمو به این روز بندازم یعنی اینجوری برحال چیز میکنی؟ کلک کلکی دیم اینه یکی کلک های آقایون کچل یا بلفله که باهاش همطوری که گفتیم چچلی رو میشه به فرصت تبدیل کرد فرصت چی شدی؟ من خودم هم دقیقا نمیدونم ولی میدونم این خودش الان یه مد آقا یک فشنه کاملا عالیه همینطوری زیبا باشید کلاگیس چیه؟ رشید من اصلا به چی کاری ندارم این گوش اولاقی ها و زبون ماری ها رو یه زبون رو دو میکنن گوش رو اولاق میکنن اصلا اونها رو نمیفهمم ولی کلن اقادم تا وقتی که مجبور نباشه نباید بره با اتاق من مگه اینکه به زور و کتک رو اینا ببرند بابا آقا با پای خودش آدم میرون تو اتاق من راست میگه آقا یه زمانی مذن به یکی میگفتی گوش الاقی یعنی لنگه رو در می آورد میزد تو دهنت کلا بعد جلوها رو ایمپلنت میذاشتی فوش بود دیگه الان میرن پول میدن خودشونو گوش الاقی کنن یا این زبون دوش ها آقا من نمیدونم زبون ماری من چیش قشنگه به هر کی بخوای برای مثلا شوخی هم زبون در بیاری یار غالب تو یه میکنه بدبخت بعد من نمیدونم یه چیز اینا چهجوری بستنی میخورن چهجوری حرف میزنن فکر دیگه کلن با زبون ماری حرف زمجه فشفش میکنن تا آخر عمر نمیدونم این یه مدلشه دیگه جدیده خدا این هفته به ما بگین چقدر زیباییتون اهمیت بیدین چقدر از لوازم آرایش استفاده میکنین و آیا حاضرین برای زیباتر شدن زیر تیغ جراحی برین یا نه پس این هفته ما را خودتون بدونین به امون بگین به چه قیمتی حاضرین زیباتر و خواستنیتر به نظر بیاین؟ بیت بیت از اله، نورالله ایران، امیر علی از تهران، مجید و آرزو، هامبورگ، رزا کنزو، اندیشه کرج، تیندرا از تهران، اه... کامی امکی، امیرابوت سیتی، آرش، خیلی دوستتون دارم، از بانکوک، تایلند، پارمین و پارمیدا کرج، سالیح از نمیشیگان، پیمان پلنگ از ویسکیلند، سعید بابای حسی از ارومیه سبزه از آمریکا، انوش اصل مالمو برفی،, مالمو برفی و سرد، منو دلبری شهر گل و بل منوچ اصفهان نجف آباد، عادل احمدپور از فیشور. اونا حالا کجاست؟ اینا امضا کردن دیگه پای برنامه ما رو در اپلیکیشن اونم iOS یاش. عزی جان من از وقتی که از ایران اومدم بیرون دیگه هیچ وقت هیچ وقت به عمل بینی و زیبایی و این چیزا فکر نکردم و فکر می دلیلش جامعه است تا وقتی که من ایران بودم خوب یادمه من خیلی وقتا میشد با گریه می اومدم خونه بعد مثلا به خاطر اینکه مثلا یک پسری به من نگاه کرده بود و گفته بود پینوکیو خب اینا همه تاثیر میذاش رو آدم که دوست داشتی که اون اراده رو از بین ببری برای اینکه کسی این حرفو بهت نزنه ولی خب وقتی که خارج از ایرانی کشور خب جامعه یه جوری برخورد میکنه با تو که تو هیچ وقت احساس نیاز کنی به عمل زیبایی بله نه درسته ولی خب خارجم هست البته شاید مثلا میگن چه میدونم مثلا راجب زیبایی من نمیدونم یه حرف یه جوری دیگه میگن شاید میگن اصلا این حرف رو که شما میگید میگه خارجه ما میگیم حالا تو خارج کمتره ولی شاید هم میگم اصلا شما زبونشون نمیفرمید نمیدونم خلاصه خیلی خوشحالیم که مشکلتون حل شده اما بریم سراغ بر بچه های فیسبوک ببینیم چه خبره فرح گفته خودشون مثل موجودات کارتونی میکنن خیلیاشون ترسناکن و آرایش زیاد آدم فکر می‌کنه دارن به مهمونی هالوین یا کارناوال میرن غرق در همه چیز البته بگم ممکنه آرایش بعضیا یه جوری باشه که ما خوشمون نیاد اما مهم اینه که همونی که آرایش میکنه خوشش بیاد دیگه شخصی چیز شخصیاله به هر حال بعضی از آرایش ها البته میگم حالا دیگه گوش الاقی و اینا یه, یه ذره زیادیه ولی خب دیگه خودشون راضین لا بود بعد یه دیگه, دیگه دیگه ببینیم چه خبر در اینستاگرام بهاره گفته اگه توی دنیا یه جا رده بالا باشیم همین عملای زیبایی الان توی ایران همه دخترها چهراشون شبیه به هم شده آقا من ترجیح میدم همون زشت فابریک بمونم تا پروتزی و چک کش خورده. آره یه چند سال دندروژجی گرد دماغ عملی و گونه و پروتز و لب و این چیزا خز میشه از مود میفته گفتیم قبلا هم دوباره دماغ وقابی و دما و دست نخورده و اینا. میفته رو بورس بعد هم بعد کلی پول بدن خودشون شبیه عمل نکرده ها بکنن بعد دیگه چه خبره تو اینستاگرام دیگه دیگه گفته که من که ترجیم میدم زشتر از اینی هم از اینی هم که هستم بشم تو اینستاگرام گفته خسته شدم انقدر وقتی منتظر تاکسی وای میستم از اون پسرهایی که جای مادرشونم تا اون پیرمردایی که جای بابا بزرگ من برام بوغ می شیوا اینا رو گفته آخه میگن خوشگلی درد سر داره درسته ها ولی باور کن الان نصفشون ها میرن اینستاگرام رادیو فردا رو چک کردن این شیوا چه شکلی از خوشگلی خودش دیگه زله شده کشته خودش دیگه اصلا ذله است اصلا دیگه نمیتونه طاقت نداره خوشا همو نه ناخوشا هم بد اعتماد بنس بالاست اس وب رادیو فردا دات ایمیل ما اس 20420 68741502042073359555 شماره سمس ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساند کلاد اینستاگرام ما رو فالو بفرمایید در کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید و همینطور اپلیکیشن رادیو پسوردار و iOS میتونن دانلود کنن داشته باشن روی موبایل و یا تبلتشون و تلفن‌های ما دو سف چار و بیست و و سه و اونایی که از داخل ایران تماس میگیرند دو سف دویست و نو نگاه کن و, زیر و رو کن زندگی تو. موسیقی یکی از قدیم میگفتن مرد نباید خوشگل باشه برای همین آقایون اصولا در قدیم الیام دغدغی زیبایی نداشتن همینج اپلی میگاشتن بر خودشون خلاص راحت بودن دیگه اما مثل خیلی از باورهای قدیمی این باور سنتی هم به مرور کم و کم تر شد و با دیدن فیلم ها و سریال ها و هنرپیشهای مرد خوشگل و درتمیز، خانم ها هم دیدن نه انگار داره سرشون کلاه میره، طبقه از آقایون بالا و بالاتر رفت و جوری شد که الان آقایون برای اینکه مورد توجه خانم ها قرار بگیرن، گاهی حتی بیشتر از خانم ها به زیبایی خودشون اهمیت میدن و اینجوری شد که سالون های زیبایی و تناسب اندام و اپیلاسیون آقایون همینام هم کسب و کارشون سکه شد خلاصه اما اما ستون زیبایی هر مردی گفتین چیه؟ نه نه نه چشو ابرو بازم نه بیا پایین بیا پایین بیا پایین لب و دهن نه بابا بیایم پایین تر بیان پایین <تصفيق> نه نه خیلی دیگه رفتیم پایین نه نه اونجا نه بیایم بالا بیایم بالا آره نهم چ جوور لب و دهن یهو سر خود اینقدر رو میرییم پایین نه بیاین بیایم بالا آره باباجان نمیخوااستن حت ب من خودم میگم ستون زیبایی هر مردی شکم آقا بله همیشه شکم یعنی نقشه که شکم سیکس پک در جذابیت آقایون داره انقدر زیاده. حتی ای غیافه دیکابریو هم داشته باشی تا وقتی هیکل شوی مرحوم پاوراتی باشه به جژم هیچ زنی زیبا نمیای باور نمیکنی خانمو بپرس بپرس به بپ... خانمای عزیز خجالت نکشین خب بگین دیگه بابا با آقای رو راست باشین دیگه خجالت بگین بگین شیکم سیکس پک چقدر جذابه براتون بگین خب دیگه آخه آخه دلشون نمیاد دل به بس که خانم مهربونن آخه هی hey, میخوان به شوهر و به دوست پسرشون اصلا قوت قلب بدن همینجوری خوبی خوشگلی قشنگی شیکمشونه اوه خیلی کیوته ازم بهش میاد میدونم چیه داستان دیگه به هر خودتون میدونین دیگه ولی اون اصل قضیه اینه یعنی اینکه گفتیم درسته یعنی دوست دارن خانومان به سیکس پک چرا که نه دیگه آره هرجور راحت این ولی ما وظیفمون بود یک سری واقعیات رو اینجا مطرح کنیم تو برنامه کنترل ما از های آدمی است که می به چشم خود شهاده پیروزی باشن کامران ملک سلام سلام فرش جان فرشی جان سیکس فکس دیگه جواب نمی دارن ایربک جواب میده من ایربک بذاشت ایربک باق... منم تکبک دارم من راحتم با تکبک <تصفيق> خب چه خبر ها؟ گامران جان این روزا به فیلم باز هم سیب داری به کارگردانی کردنه بایرام فضلی رو پردست که از دست اتفاقات نادر سینمایی ایران محسوب میشه فضای فیلم خیلی عجیب و غریبه خیلی خوش ساخت اما این فیلم هم خیلی از فیلم های خوب مورد کملود لطفی قرار گرفته فقط تو گروه هنر و تجربه به نمایش در اومده بریم بخشی از صدای فیلم رو با هم بشنویم من بیشتر توضیح می دهم. روزی روزگاری در سرزمینی دور باستاری باشون میچنی <تصفيق> نیگونه شدی؟ مستاره هست شکمت سیر شد؟ توش نمید همینه برای منه؟ تو چنبور از اون رو فرار کردی؟ هیشکی نتونه سبری تو دوستید اگر برزه این قبر سورو میدم به شما که توش زندگی رو بازم سیبداری؟ بله، بخش از صدای فیلم بازم سیب داری به کارگردانی بایرام با فظلی رو شنیدیم. میگفتی کامران. بازیگرای اصل فیلم زبیه افشال، لیلا موسوی و مریم بوبانی هستن. تیم تولا جان تو ده تا جشنواره خارج از کشور شرکت کرده بود. جایزه بهتری رو از جشنواره اوباجا گرفته. به حال فیلم برای سینما دوستان و تماشاگرای کاری غیر ای که علاقمند هستن یه کار بسیار دیدنی. بسیار خب بریم سراغ موسیقی کسی کار جدیدی منتشر نکرده کامران اونم باید بگم راجبه موسیقی که فردا اولین آلبوم رسمی کابه افاق خواننده خوب موسیقی پاپ به صورت همزمان تو کل کشور منتشر میشه اسم آلبوم هست با قرض ها میرقصت خیلی اسم با مزه جالبی داره <تصفح> تمام اشعار همینطور آهنگسازی ها کار خود کابه افاق بسیار خب ممنونم ازت کامران عزیز میریم بخشی از یکی از همین کارای این آلبوم یعنی با قرص ها میرقصد به اسم فلوکسیتین رو میشنفیم تا فردا تو فردا خود میگه حل کن فلوکسیتین ها تو شاید حل کرد مشکلات رو زمین مشکلات ها ها و پوتین دستای پرچینو یه پرچین بود تو این لیوان حل کن فلکس تو شای در همان میدون مینا غم مردای سیرو the توی با سلام بیسرکسی دوشنبه شب را ضمن اعلام تسلیت به خاطر مخالفت ستاد نیروهای مسلح با فروش خدمت سربازی به غایبان بیش از پنج سال با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماوی اعلام دستگیری سه متهم اصلی حمله به سفارت عربستان از سوی دابستان تهران گمرهزنی ها درباره اینکه بالاخره اعلام میشه اینا سلطنت طلب بودند فگر بودن, بودن، نفوذی بودن یا چی؟ باز هم پایین تر آمدن قیمت نفت در پی رفع تحریم به ایران و نظر کارشناسان که در ادامه همین روند اگر به زودی نفت ایران سلواتی نشه باید خوشحال باشیم و پرداخت بدهی یک میلیارد و هفتصد میلیون دلاری آمریکا به ایران بعد از لغو تحریم ها؟ و خوشحالی گروه های مختلف مردمی که خودداری شد یارانه یکی دو ماهیمون در مدت خدا کریمه مهمترین انوایی خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروب خبرها با همکارم می بلی, بلی با سلام مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد در مصاحبه با یکی از مطبوعات گفت کلمات مانند شراب نباید در کتاب بیاید حتی اگر متن در تقبیه شراب بوده گفته این کلمه شراب اصلا نباید بیاید در همین رابطه یکی از کارشناسان امور زده شراب کشور زمین تقدیر از روحیات انقلابی مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید به خبرنگار ما گفت داوتو هاتف در یکی از ارشار ارش عش میگوید. از شراب و بنگ روز جمعه در ماه سیام شیخ را بالای منبر ساختن مست و ملنگ و یفصود با توجه به اینکه در این بیت حاطف هم از مشروبات الکلی استفاده کرده هم نگرشی مثبت به مواد مخدر داشته و در نهایت هم یک شیخ محترم را آن هم بالای منبر به انجام عمال مجرمانه مستی و ملنگی متهم کرده است؟ به نظر می رسد نه تنها داره کتاب باید دیوان حاطف اسفانی را آوری و خمیر کرده که آرامگاه وی در نیز با خاک یکسان نماید پایان محروف اخبار ای همانطور که در خبرهاب شنیده اید طبق بعضی از اصحاب نظرها، 99 درصد از اسلاح طلبان توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند. برای بهتر قرار گرفتن در جریان این خبر، همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشنافس مشکلگوشای برنامه برادر مشکلگوشا هستیم تا مشکلات ما را گشایی کنند. برادر مشکلگوشا چی ماجره این رد سلاحیت فرصت سلام علیکم ندارم با شما بگو نازی مشکل یعنی کشتی منواتو فرصت میدم سلام علیک کنی مثل چی تو شروع میکنی بفرمایی سلام علیک بفرمایی سلام علیکم همین تام شد این که چی بله بگذریم آقا پرسیدم این ماجرای رد صلاحیت ها چیه خب به این رد صلاحیت ها ای بود که باید توسط حیات های نظارت صورت میگرفت که به همدالله گرفت و دیگه نتایجش رو هم شنیده دیگه موشیل آخه این استاندار تهران گفته بود که رهبری گفته همه بیان رای بدن حتی مخالفین نظام بله, بله. بل حالا اصولاً این کسی نمونده از غیر اصولی را که بیان بهش رای بدن مردم ببینی که ببینید البته کلام رهبری که چراغ راه مایه و این مسئله که از این اصلاح طلب ها کسی نمونده هم سیاه نمایی که دشمنان نظام و انقلاب همیشه انجام بدن بس سیاه نمایی چی مشکل خودت بگو اصلا از این اصلاح طلب چند نفر تایید صلاحیت شدن بگو بله نگه عرض میکنم خدمتتون از تعداد خوب خوب هزار برادر و خواهر اصلاح طلب هستبت نام کرده بودن و امدالله تعداد زیادی از اونها تایید شدن مدارکش هم موجوده دیگه خوب همین این چند تاشون تایید شدن بگو دیگه تعداد عرض کردم تعداد خیلی زیاده دیگه خیلی آقا میگم عددشو بگو میگه تعداد زیادی تعداد قصیری. مالغ بر سی نفر تایید شدن دیگه آه خسته نباشید بلد. از سی هزار نفر سی نفر تایید کردین تا جی میگین تعداد کسیر؟ یعنی بله این... به نظر ما که سی نفر بسیار تعداد زیادیه و انشالله ما در سطح کشور شهد انتخابات پرشوری خواهیم بود بله با گفتیم تو این دوره پسابرجام کمی شما هم شل میگیدین دیگه بلد. زدین ترکون دینین بیچاره رو که بالا. بله واقعا همین جوره که شما میفرمایید ما می همون جوری که فرمودت چجوره بود بله بله امی این صورت که شما گفتید عمل کردیم که خوب نتیجهش هم همین اینجوری شد. این تازه شل کردهتونه. یا خدا. خب حالا چی میشه آخرش بشه؟ آخرش الله وعده ما پای صندوق های رای با مردم خوب با مشکل راستی اینکه رهبری گفت حتی مخالفین نظام و مخالفین خود ایشون هم بیان رأی بدن. بلن. یعنی واقعا اگه کسی با این ویژگی ها بیاد تو انتخابات چرت کنه باش کاری نداری شما؟ ما با فرموده ولی امر مسلمین دهان وان انشاءالله تو غبل رای دادن و در صف دادن و در هنگام رای دادن کاری بوینا فصد نداریم دیگه اینو خب بعدش چی بعدش الو الو الو bande صدای شما رو ندارم الو, الو مشکل صدای منو داری الو. الان الو بله بله الان ارتباط برقرار شد چی فرمادید شما چی میگم که اینایی که بس. این نظام رو قبول ندارن الو. این بعد از رای دادن چی کارش کارشون ندارید بعد از بس. رای دادن ظاهرا این صدا ای با حالو حل... باشه متأسفم. بیا. ای بی‌صدا بشی لایو مشکل. من بابام. الو. ها؟ آقا چی چی میگی؟ بله. برادران آقا زب دی چی؟ کی ساخت کلی برنامه؟ بای... ده... نامی فوری الو. ممنون ممیون. نامی فوری چی نامی از شورای نگهبان؟ برادر طلو. ای بابا مشکل تو کم جلو جلو کن معلوم می. همجی علی علی چی نامه از هیئت های نظارتی مجلس برادر متعهد جناب آقای میکروفون طلا الو مستحضر میرساند صلاحیت شما برای کاندیداتوری در انتخابات علو. مجلس ایراد نشد امضای الله احمد جنتی علو. از طرف برادر مشکلگوشا جان الو الو هی نکن بینیم ما مشکل دیگه این چی این نامه علو. باز علو علو میکن. علو. مشکل ما با اساس ثبت نام نکردم علو. تو انتخابات که چرا رد صلاحیت شدی چی میگی الو میوازم دوره مگبر امریکا درود بر بفرمان درود مشکل میگم نامه اومده برای من چیز رد سلایت شدم من اصلا سبت نام نکرده بودم برای انتخابات بله بله اونو, اونو بنده تش... گفتم برای شما اختصاصی بزنن چون هنی یعنی چی؟ همیشه پیشگیری بهتر از درمانه میگه یعنی مشکل اگر بدن هم لازم شد این در سوابق شمال باشه دیگه داشته باشه یعنی مشکل الان صد بله. تا دشمن داشته باشه بهتر از اینه که رفیق مشه تو داشته باشه الو بله. بقول بابا من نمیخوام تو ببینم الو ای بقول الو یه کر شده لالم شده ای الو الو, الو, الو, الو, الو. قد کنی ما اینو رد کنی الو این مرض ویروسی هم پیشگیری کرده از بعد اجازه نمی... چی آقا این نامه من به خاطر حکومت فرهنگ حجاب اجباری یا هر چیز دیگه ای ولی به نظر من این همه آرایش و عمل و تزریق درست اینه, اینه که یه پلاکارد دستت بگیری که روش نوشته من از خودم متنفرم دیگه حالا نه دیگه حالا به این شدت هم نیست بابا ممکن حالا رو پلاکاردت نوشته باشه من الان بیشتر از قبل خوشحالم چون شماها عقلتون به چشتونه الان بیشتر من تحویل میگیرین بیشتر من دوست دارین. یعنی اگه عمل زیبایی مثلا پلاگ هارد هم باشه روش اینو نوشته اعتمالا وگره کسی که عمل میکنه خودش از خودش که متنفر نمیشه که فقط ممکنه مثلا از رفتارها و برخوردهای اطرافیان ممکنه خود ناراحت بشه اونا رو حساب بشه ولی ممنونم از تماستون نظرتون رو گفتیم خانم آقای اون یکی از سوالهایی هایی که همه ما بعد از اجرای شدن این توافق ای داریم اینه که خب الان این همه پولایی که قرار بیاد به ایران برسه رقم دقیقش چقدر هست حالا؟ آقای سیف ریسه کل بانک مرکزی یک دو روز پیش اومده بود تلویزیون و میگفت که پولی که ایران میگیره توی... این چند روزه دو قسمته قسمت اولش اینه الان 22 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در چینه قسمت دومش هم اینه 4050 میلیارد دلار طلب بانک مرکزی از وزارت نفت و شرکت شرکت های نفتی 4050 میلیارد دلار که نشد حرف آقای سیف یه رقم دقیق بده ببینیم همش با هم کلا زیر و رو و 52 میلیارد دلار نفت 22 میلیارد دلار هم چینه میشه 74 میلیارد دلار به به به سلامت حالا جالبه که خیلی از اقتصاددان میگن این پول اگه درست مدیریت نشه بودنش از نبودنش زررش برای اقتصاد بیشتره درست مثل یه آدم معتاد بدحال که وقتی پول داشته باشه میره جنش میخره نشه میکنه و وقتی هم نداشته باشه خماره دیگه اما اگه پولش رو بده دستی آدم عاقل این میبردش مرکز ترکیتیات و میخوابوندش اونجا ترکش میده تا برگرده به زندگی نرمال به همین دلیله که باید مواظب باشیم که این اقتصاد ما که الان قرار از خماری در بیاد یه یهوم نشنگین نره که عاقبت نشنگی میدونین چی میشه میدونی میشه وضعیت مملکت در پایان دوران بودی که صدها میلیارد دلار پولو تبدیل به بیپ کرد و کشور داغونتر از قبل شد و پیکارش خلاص الان ما نمیدونیم باید خواهش کنیم دعا کنیم قسم بدیم گریه کنیم رگ گردن رو بذاریم فوش بد بذاریم و صدقا چی کار کنیم که این مسئولان عزیز این پولای مردم رو بگیرن درست و در جهت خیر و صلاح مملکت ازش استفاده کنن؟ حالا فعلا الان خواهش میکنیم اگه نشد عباستون باشه گذین های دیگه ای که گفتیم همه رو میزن بله عباستون باش. این خب برد سلام امیدا بردن بالاخره بعد چهل سال رفتیم المپیک نه مونده هنوز والا سلام سلام انقدر چی شمون ترسیدی که از برد جاپن زیرترین تیم گروه هم باید همین داداردودو رو ایران ایران بکنیم <تصفيق> آره بله سه, سه دو جلویم یه در یه مونده تموم بشه اون برم قطر چاردو سوریه رو برده با این نتیجه ها تیم ما به عنوان تیم دوم سعود میکنه بعد از قطر ما حریف ژاپن شدیم تازه خانه اول رو فرجی جان محکم بله بازی تموم شد 3 2 تموم شد خانه اول سوتو زدن تموم شد رفتیم المپیک 3 2 نه نرفتیم به پایان رسوندیم نه هنوز نرفتیم مونده اگر ای بابا. بالا تو جزه 80 تیم شدیم ژاپن رو داریم رو روز جمعه بعد اون تیم رو بزنیم تازه بعد بیایم نیمه خلاصه خیلی کار داریم ولی به قدم اول بالا بعد از 40 سال ببینیم این تلس شکسته خواهد شد مینیمالام یا نه؟ خب به سلامتی این از فوتبال و المپیک دیگه چه خبر از جاهای دیگه ورزش والا تیمای سرخابی پایتخت جان امروز از شهرداری تهران دو تا ورزشگاه هدیه گرفتن به سلامتی تو منافق 18 و 19 آره اما خبر بامزه اینجاست که سر اینکه کدوم ورزشگاه به کدوم تون برسه بنوشته خبرانان امروز دو تا تیم تو دفتر معاون وزی شیریا خط کردن سر وزشگاه ها خب باز خوب کار به سنگا از ایچی و پالانپولون پیلیم و اینا نکشید <تصفح> شیر خب شیریا خط قضیه حل تو شد تامون شده رفته حالا چه خبرهایی میشنم <تصفح> دیگه چه خبر از خبر آخرتم هم بگو که بریم دیر شد آره خبر آخر خبر رد رضا احدی پیشکسوت ستاره سابق تیم استقلال امروز سن 53 سالگی به دلیل بیماری حاد ریه و کبد درگذشت خیلی از پیشکسوت ها اظهار تاسف کردن اما مجید نامجو مطلق یکی از ستاره های سابق استقلال یک جمله انتقادی گفته به مسئولان استقلال گفته رضا احد عهد. رضا احدی آسوده بخواب که مسئولان استقلال هم تخت خوابیده روح شاد ممنونم ازت فریدورز عزیز باد خداحافظی میکنیم تا فردا تو فرد خودم یه بسیجیان و, و سپاهیان و باقی نیروهای انقلابی عزیز میهن اسلامی به اطلاع می آژانس آجانس بین المللی انرژی و آمریکای جنایتکار در تهران دفتر یا سفارتی ندارد بنابراین لازم است همگان توجه داشته باشند یک وقت اشتباهی از در و دیوار ساختمانهای دیگر بالا نرفته آنها را آتش نزنند پس برادران عزیز ضمن حفظ آرامش خود در جریان باشند که نور چشمان مقام معظم رهبری در شورای نگهبان به نحو مقتضی با رد صلاحیت ها در حال گرفتن حال فتنگران و نفوس کنندگان آمریکایی هستند. منتظر اطلاعی بعدی این ستاد باشید. ستاد مقابل با پرو بازی های پسا کل کشور، هفته ای با دوستم مریم و شوهرش رفته بودیم شام بیرون من و مریم کنار هم نشسته بودیم پشت میز شوهرش رو برمون یهو انگار بر اولین بار متوجه چش و ابروی شوهرش شده باشم گفتم علی آقا شما زیر ابرو برداشتین نشش باز شد گفت ای بی گفتم نه فقط به ریش بلندتون نمی این کارا اخمش رفت و هم گفت یعنی ریش نشانه مردانگی زیر ابرو برداشتن زنانگی. الان شما و مخالف گفتمان گفتم بله هستم الانم فکر نکردم توهینی کردم برام سوال پیش اومد همین بعدم خب چه عادت نداره گفت عادتش بده یعنی وقتی شما دخترا مو هاتونو کوتاه کوتاه کردین حتی کچل کردین کسی گفت کله کچل به صورت پر آرایشتون نمیاد گفتم نه خب اون برای زیبایی بود الان این ابروی شما برای زیبایی قبول دارم ببخشید گفت خواهش میکنم گفتم محض کنجکاوی فقط کدوم آرایشگا میرین خیلی خوب مرتب کرده ابروهاتونو نشش دوباره باز شد گفت خطریش هم هم بند انداخته گفتم کارش تمیز بوده نگفتیم این کی میرین گفت همین بغل لحظه نشسته مریم گفتم به به دوستم نمیدونستم انقدر برابری اندیشی در امر زیبایی گفت تازه متوجه نشدی براش خط من کشیدم گفتم نگو نکنه میخوای مسابقه شوهر که خوشگل تره را بندازی بابا لاده با روزنامه روز پیش خوب اعتماد با اشاره به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات از قول استاندار تهران تیتر زده بود که مگر رهبر انقلاب نگفتند حتی اگر نظام را قبول نداشتید رای بدهید خب به کی رأی بدهند؟ معلومه دیگه به بقیه نیروهای های مؤمن و انقلابی که رد سلاییت نشدن رای بدن اینم هم پرسیدن داره پیش به روزنامه جامجم از قول یکی از بازیگران مجموعه تلویزیونی معمای شاه قضاوت در باره شاه زود است یعنی هنوز همه آساشون رو نکردن بچه‌ها احتمالاً در ادامه میخواد رضا شاه رو معتاد متزریقی و شاه هم در حال مثلا واک زدن کفش سفیر آمریکا نشون بدن دیگه اون موقع قشنگ بشه قضاوت کرد چند روز گذشته یکی از خبرهای خوش ناشه از توافق ایران و غرب این بود که تعدادی از زندانیان سیاسی دوتابعیت ایرانی و آمریکایی آزاد شدن کسایی مثل جیسون رزاییان و سعید آبدینی و امیر حکمتی و چند نفر دیگه چیزی که میونه شیرینی این خبر خوشکام آدم آدمو تلخ میکنه اینه که همین الان توی زندانهای ایران چندین و چند نفر زندانی سیاسی به دلایل مختلف هنوز توی زندان هستند. مردان و زنانی که روزها و شبهای عزیز و توی چهاردیواری تنگ و تار و نفرت انگیز زندان میگذرونن چون جور دیگه ای فکر میکنن و زیر بار حرف زور نمیرن کسانی مثل ایسا سهرخیز و بهاره هدایت و ریحانه تبا تبایی و عالم آدم دیگه البته دو تابعیتی نیستن اما ایرانیان هستن تابعیت دیگه هم اگه داشته باشن برمیگرده به تبعیتشون از وجدانشون و اشخشون به عشقشون وطنشون امیدواریم که مملکتمون روزی بیاد که بارون رحمتش سر و روی همه مردمونشو نوازش کنه نه اینکه بارونش بباره و دلای ما هنوز خون باشه به خاطر این همه قربت، این همه تلخی، این همه حبس، حسر و این همه فراموشی